سوره مبارکه دهر هم موضوعش قیامت است. خدمت شما ارز کردم که از این به بعد تمام سوره ها موضوعشون قیامت است. در سوره قیامت ما تخویف های خاندیم برای منکرین قیامت که بعد از مردن های شما را جمع می کنیم مجددن احیا می کنیم زنده می کنیم. حال در سوره دهر بیان میشه یک نمونه بیان میشه اون نمونه نمونه خود انسان است اما به صورت کامل تر اونجا خداوند عزوجل بیان میکنه که ای انسان اگر قیامت را باور نداری به خودت فکر بکن یک قطره نطفه بودی بعدا این نطفه با یک نطفه دیگه خاطی شد دو قطره آب با هم مخلوط شدند از این دو قطر آب یک انسان سمی و بصیر دارای تمام صلاحیت ها و کمالات دارای علم و عقل و فهم و درک درست شد پس همون طوری که رب توانست از این قطره این انسان را درست کند این را اگر بخوایم با عقل بسنجیم که نمیشه پس همین طور به قدرت خدا ایمان داریم خدا میکنه پس این باور داشته باش که این استخان پوسیده را همون خدا تبدیل به یک انسان زنده در روز قیامت خواهد کرد. هل اتا على الانسان حين من الدهر هل در بسیار جا به قد میشه اینجا به معنی قد به تحقیق هل اتا قد اتا على الانسان حین من الدهر بر انسان زمانی از زمان بوده گذشته که لم یکون شئی مذکورا یعنی یک روزی بود که انسان چیز مذکوری نبود قبل ذکر نبود قبل از آفرینش انسان هیچ کس انسان را نمی اصلا یادی از انسان نبود ذکری از انسان نبود یا تک تکی ما خودمون را فکر بکنیم هر یکی هرچی سنش هست اگر سن تون سی ساله قبل از چهل سر هیچ که نامی از شما نمی دانست قبل از 50 سال هیچ که نمیشناخت شما کی هستید قبل از صد سال هیچ یکی از ماها هیچ کسی نمیدونست این احمد اون تقی نقیه هیچ کسی نمیدونست اما امروز تو هستی وجود داری انگشتای اشاره به سوی تو هست لذا چی بود که از اون نیست هستت کرد کی بود همون ذاتی که از اون نیست هستت کرد از نطفه پیدا کرد همون زاد دوباره بعد از مردنت میگه من پیدایت می باور داشته باش هل اتا علی الانسان حین من الدهر همانا آمد بر انسان وقتی از زمانه که لم یکن شیئا مذکورا چیزی قابل ذکری نبود اصلا ازش یادی نبود انا خلقنا الانسان همانا ما آفریدیم انسان را من نطفه آم از نطفه زو آم یعنی مختلط، قاتی. تنها یک نطفه مرد کفایت نمیکنه، تنها نطفه زن هم کافی نمیکنه. نمی هر دو که با چی میشن، مخلوط میشن، قاتی میشن، زو آم مختلط، نب تلیه. براي پیدا میکنیم برای چه آفریدیم نبطلی تا کہ بیازماییم او را انسان را خدا برای آزمایشی پیدا کرده که این انسان چقدر مغرور میشه چقدر متی میشه فجعلناه سمیا بصیر انسان را که امتحان میکنیم اسباب امتحان را هم بهش دادیم یعنی به او صلاحیت های دادیم که بر اون صلاحیت ها امتحان بشه مثلا فجعلناه سمیا بصيرا ما اون انسان را سمیع و بصیر قرار دادیم هم به او قوت شنوایی دادیم هم به او قوت بینایی دادیم و هم به درک و فهمیدن دادیم انا <سؤال> بعد از اون که ما آفریدیم انسان را چشم دادیم گوش دادیم عقل دادیم بعدن به وسیله کتب و رسول انا هدیناه السبيل زینش منیست به وسیله کتب و رسول بعدن به وسیله کتابهای آسمانی و رسولان خودمون به او راه را نشان دادیم انا, انا هدیناه السبيل همان اما او را راه کردیم به راه ماشاکررا او و ما کفورہ اما این انسان یا ان کے قدردان میشه یا ان کے ن سے پاس میشهماشاکررا یا انسان قدردان میشه یا نہ پاس میشه اما اگر نے پاس میشه تخوی ف برایش۔ این مراحل هست ان اعتدنا کافرین. همانا ما آماده کردیم برای اون انسان هایی که کفر را انتخاب میکنن اونهایی که کافور میشن اونهایی که ناقدر میشن سلاسل و اغلال و سعیرا. زنجیر زنجیرها توقه را و آتش جهنم را برای اونها این آماده کردیم هم زنجیر هم توق بگردنش و هم آتش نی جہنم یعنی عذاب بدبختی اگر راه چی انتخاب کرد راه کفر را راه انکار راه ناسپاسی را اما اگر راه نیکان را اختیار کرد راه صالحان را اختیار کرد راه بندگان متقی و مؤمن را اختیار کرد ان الابرا يشربون من کاس كان مزاجها کافر ہمارہ انسان های ابرار انسان های نیک میشرابون من کاس مینوش از جامی که کانہ مزاجوها کافورا اون جام با اوچی مخلوط شده یعنی جام شرابی هست که مختلطش مخلوطش آمیختهش کافور است ببین کافور یک خشبویی هست اینجا ما در دنیا در معمولا کفن ها رو کافور میزنه این کافور نیست اصلش خوشبویی های در بهشت هستند در تعلیمات گذاشته انبیاء هم بودند بعدن انسان ها خوشبوی های این دنیا رو به اون نام ها گذاشتند نام گذاری کردند اون کافور الله بهتر می داند چیه؟ یک خاصی است که شراب را وقتی که انسان می نوشد بلا تشبیه بگم الان شما یک گاهی چای یک جای میل می فرمایید اما یک جای خیلی خوشیت میاد یک چای یک عطر خاصی داره میگه که تو این چای چی ریختی میگه فلان چیز را ریختم یا گلاب مثلا توش ریخته یا فلان بوته خوشبو را ریخته که چای یک عطر خاصی دارد لذا الله عز وجل شراب را و می را که به شما می و شما را پذیرایی میکند با یک خوشبوئی خاص به نام کافور که در بهشت است الله عزّ و جل اURA آمیخته کرده. کافر چیه؟ الله خودش توضیم میده. عینی یشرابو بها عباد الله. چشمی هست که می نوشند از ان چشم عباد الله. بندگان خاص الله از آمی نوشند. می گویند که کافر وقتی که با اون شراب مخلوط بشه آمیخته بشه. این سبب فرحت و شادی بیشتر میشه انسان بیشتر لذت میبره و باعث خوشبوی و عطر بیشتری اون شراب میشه و بعض کافور یک ای هست در بهشت که اون چشمه را انطوری که قرآن گفته یک چشمه بسیار خوشبویی هست تا دلت بخواد بوی عطر خوشی دارت اما شما کاختون یک جای دیگه هست قصلتون یک جای دیگه هست قران میفرما میتونی این را اونجا بکشی یعنی از همین همی جوی کافور را همین چشمه کافور را میبری جلوی خانه خودت اونجا هم اون این آب چی میشه اونجا هم جاری میشه عین به بها عباد الله چشمه ای هست که مینوشند از آن بندگان خاص یفجرونها تفجیر تفجیرا آن را جاری میکنن جاری کردنی هر جدیشون بخواد اونجا کافور را میبرند جاری میکن فقط اشاره بکن نه اینکه برو مغنی بیار روز کار بکن نه فقط اشاره بکن یوفجرونها تفجیر را جاری میکنند جاری کردنی خب این ابرار کیا هستن اوصاف ابرار اول این اوصاف را برای خودت در وجود خودت احیا کن بعدن به فکر جام کافور و جام شراب باش یوفون بالنظر این کسانی هستن که نسبت به نظر خودشون وفا میکنند. نظر چیه؟ ببین اون چیزی که ما میفهمیم هر چی که من بگردانم خدا یا به خاطر تو من سه روز روزه می گیرم یا به خاطر تو من صد رکت نماز می این نظر شد. اما اینجا مراد نظر تنها این نیست. بلکه نظر اونطور که مفسرین گفتن عام هست اینجا. هر چیزی که بر انسان واجب است چه خدا واجب کرده چه خودت بر خودت واجب کردی چه خدا واجب کرده چه خودت واجب کردی چه مربوط به حقوق الله چه مربوط به حقوق عبادت است. خوب توجه بکن مثلا از کسی زمینی خریده یک چکی بهش دادی صد میلیون تومن سر برج میدم این را بر خود واجب کردی باید بدی؟ این نظره این درباره حقوق و و صدها حق مردم که برگردن ما ها هست و همچنین چیزی که خدا گفته حج هست زکات هست روزه هست نماز هست این همه جز واجبات و فرایز اینها این را انجام بده چیزی که خودت بر خودت واجب میکنی لله علیه سوم و شهرین مثلا اگر فلان مقصدم فلان هدفم براورده شد یک ماه روزه میگیرم، سه روز روزه میگیرم، ده روز روزه میگیرم، یک میلیون تومن، صد میلیون تومن در راه خدا صدقی میگیرم، این همه چی هستند؟ نظر هستند. بس النظر ها هون عامون. علامه اندلوسی میفرماید، نظر عام هست. لما اوجبه الله تعالی، اون چیزی که خدا بر تو واجب کرده، و ما اوجبه العبد، یا اون چیزی که عبد خودش بر خودش واجب کرده، فیدخل فیهِ الإيمان و جميع الطاعات هم إيمان و تمام طاعات در نظر داخلا. و امام رازی میگه و المراد بالناس جميع العقد والعهد هر عقدی که بستی هر عهدی که بستی مثلاً عقد معامله عقد نکا به سبب این نکا مهر بر انسان لازم میاد حقوق لازم میاد نفقه اینا تمام نظره هستند یا عدی که انسان متعهد میشه همه اینها نظر هستند لذا ابرار که یوفونه یوفون بالنظر همه اینها را کامل ادا میکنند و یخافون یوما کان شره مستطیرا و میترسن از آن روزی که سختی اون روز طولانی هست مستطیر یعنی عام زیاد سختیش خیلی زیاد است ويطعمون الطعام على حبه، وكسانه استنكت طعم ذهن على حبه برأساس محبة الله. شبهه إن آيرش ما قبلنا خانديت. دم مفهم داره على حبه يعني على حب الله، على حبه يعني على حب الطعام. هردم عند روزي. علا حب الله یعنی چه؟ یعنی هر چی میدی، به فقیر میدی، به یتیم میدی، به مسکی میدی، به خاطر خدا میدی. این چون خدا را دوست داری. این علا حب الله است. اما یک مفهوم دیگرش که اون مفهوم هم از آیه دیگری قرآن تایید میشه اینه که تعامی بده که خودتون تعام را دوست داری. نه این تعامی که پس مانده هست خودت نمیتونی بخوری، دلت نمیاد. بعد اونو مندازی جلوی کسی دیگه، اون طعام بالاخره ارزشی آنچنانی ندارد، خیلی ها هستند که چیزهای باز هم اینها را انسان بده، نیت خیر باش خدا بی اجر نمی کنه، اما چیزهای مصرفی که دیگه بیشتر از این خودش مصرفش نمی کنه، اونها را می دهند، و بعضی وقتا دادن اینها مارا تنبل میکنه مثلا همیشه غذای میده به فقیر که اضافه بماند توی یخچال میذاره یا به فقیر میده خب اون غذایی که خودش نیاز داره از همون غذای گرم و تازه به اون همسا، همسای فقیر نمیده این دیگه کمال نشد یا مثلا صدقی میده یا همچین در زکات بعضی متاسفانه این کار را میکنند مالی میدن که اون مال در از کنم بازار خریدار ندارد بنجل شده از مد افتاده لذا این را میده به اونان صدقی چرا اون زمانی که رواجداش مد بود اون زمان ندادی لذا علی حبه محبت طعام در دلت باشد و بده لن تنالو البر ارز کردم با آیه دیگه تایید میشه لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون خارج کنی اون مال را که خودت هم اون مال را دوست داری، به اون مال خودت دل بستگی داری. لذا ویتعمون الطعام على حبه‌ی طعام را میدن در حالی که اون طعام را دوست دارن یا خدا را دوست دارن. به مسکین میدن به یتیم میدن به آسیر میدن یعنی چه؟ یعنی اقشار مختلفی را، اقشار مختلفی را. مثلا هم به مسکین بده کسی که نادار هست هم یتیم بده هم به زندانی بده و خانواده زندانی اسیر بده به همه اخشار بده خداوند عزوجل انجا که بحث زکات و صدقات آورده هشت گروه رزق کرده اینما الصدقات للفقر للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل همه را به مسافر بده، به فقیر بده، به یتیم بده، به مسکین بده، به مجاهد فی سبیل الله، طالب العلم، به همه بده لذا انسان سائی کنه به یک قشر نده یه چیزی هست که انسان معلوم میشه از آیات الهی و هم از حدیث گوهربار رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم که سائی بکنه در طاعات و عباداتش و باشد فقط یک نوع عبادت انجام نده و اگر انجام داد فقط به یک خشر نده مثلا وقتی صدقی می دی کنید که بعضی هستن فقط دنبال یتیم می گردن شنیدن که در حدیث رسول الله فرموده انا و کافل الیتیم که حاضین او کما قال السلام منو کسی کی یتیمی راستار پرستی میکنه و کفالت میکنه مثل این دو هستیم کناره هم هستیم روز قیامت خب همین حدیث را گرفت دیگه به دیگران رسیدگی نمیکنه در حالی که دیگران هم هستند لذا انسان سعی کنه وقتی که چیزی میده به همه اقسام بده و کار میکنه هم همه کارهای بیر را و کارهای خیر را انجام بده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یک روزی فرست که امروز کی روزه هست روز روزه نفلی بود. ابو بکر صدیق گفت من. پرسید امروز چه کسی به عیادت مریض رفته؟ ابو بکر صدیق گفت من. بعد فرمود که امروز چه کسی در جنازه شرکت کرده؟ ابو بکر صدیق گفت من. هر چی که رسول الله می پرسید انواع عبادات که مربوط به حقوق الله بودن و حقوق العباد. ابو بکر رو می گفت. و فرمود که از تو جز این انتظاری نمی رفت. و تو هستی که همه این عبادت ها را انجام میده. منظور اینه که کسی که به کمال رسیده او هر نوع عبادت را انجام بده هم اونی که مربوط به حقوق الله هست هم مربوط به حقوق العباد یک کسی اصفی اول می نشینه نماز می خونه. اما یک ریال از زیبش خارج نمیشه. ان اینکه خوب نیست یک کسی اس که ماشاءالله دست دهنده در زیاد میده اما به مسجد حوصله نمیکنه بیاد اینم خوب نیست در هر کار انسان در صف اون انکار باشد و وقتی که به فقرا میده هم به همه نوش بده مسکین و یتیم و اسیر انما نطعمكم لوجه الله و به اونها هم بگه که ما به شما میدیم به خاطر رضا خدا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نه شما آواز میخایم آواز فعلی ولا لا شکور نه از قولی نه ازت میخوام که تشکر بکنی از من و نه شکور بانش همینه منو تعریف کنی مرا مده بگویی نه این انتظار را ندارم برو من به خاطر رضای خدا و نه ازت میخوام که اواز فعلی بکنی بیایی ب... مثلا دست منو بگیری اين بار من را تخونه ببری برسونی نه اینا نخاف من ربنا این علت است. همانا ما می ترسیم از ربمان یا اومان عبوسان از اون روز سخت قمتریرن یعنی خیلی سخت. عبوس یعنی سخت. و قم طريق خیلی سخت لذا اینها هستند ابرار وقتی که ابرار این گونه عمل میکنند خدا میفرماید فوقاهم الله شر ذلك اليوم الله انها را حفاظت میکند از شر امروز و لقاهم نظره و سرورا و اون انسان ها را لقاهم مواجه میشه با اونها ملاقات میکنه با اونها یعنی پیش میاد برای اونها تا روتازی و شادابی انها در اون روز جهیرش اللہ تر و تازه با خوشحال و شادان هستند و جزاآهم بی ما صبرو جنتهاو و حریرا الله به اونها جزام میده به اونها پاداش میده به سبب آنچه که استقامت کردن صبرو استقامت در دین است استقامت کردند بهشون چی میده جنت و حریره، بهشت میده انواع پوشیدنی ها و لباس های ابریشمی میده متکئین فیها علی الارائک در اون بهشت ک آدم بر تخت ها لا يرون فیها شمس و لا در اون بهشت نه خورشیدی میبینن یعنی گرمی و لا زمهریر نه سردی میبینن یعنی نه گرم هست نه سرد هست هوای بسیار متدل و زیبا دارد و دانیتاً عليهم ظلالها و نزدیک هست بر آنان سایهاش یعنی سایهاش در اخبرونها افکنده و ذللت قطوفها تزلیلا نزدیک کرده میشه قطوفها یعنی خوشهای آن نزدیک کردنی و يطاف عليهم بآنیت من فضتن و اکوابن كانت قوارریره الله می فرماید که بر اونها چرخانده میشه دور داده میشه یعنی اون اطرافش میارن، بار بار می گردانند چی میارند به آنیت من ف ظرفی که از نقره هست و اکوابن و اون ظرف غذایی که كانت قوارریره، از شیشه است ببینید این زد و نقیز آیا از نغره هست یا از شیشه اینا دو جنس متفاوت هستند علما میگن که قواریرا من فضه منش اینه که در جنس شیشه است جنسش نغره است اما از نظر درخشندگی و شفافیت مثل شیشه هست یعنی اصل جنس از نغره ولی مثل شیشه ته زرف را هم می بینی؟ و اكواب کانت قواریره قواریره من فضه یعنی چی چی از نقره قد دروها تقدیر خداون و تقدير خداوند اندازه کردند. اون را اندازه کرداني و يسقون فيها كأسان كان مزاجها زنجبيله و نوشاندميشه آب داده دادميشه با جامی يا شراب داده دادميشه با جامی که كان مزاجها زنجبيله مخلوطي اون آمیختي اون قاطی اون چی هست زنجبیل هست بنده اذکر کردم که این اسم هایی که ما در دنیا داریم یکی را مثلا میگیم کافور یکی را میگیم زنجبیل اینا در واقع اسم چشمه و جوی در بهشت هستند بعدا مردم دنیا اسم این اشیاء را گذاشتند چون مثلا اینها یک چی داره خوشبویی داره یه عطری داره مثلا اسم اون اونجا را گذاشته زنجبیل چیه عینا فيها تسمى سلسبیلا اون چشمه هست که در آمبهش بهشت نامگذاری شده به سلسبیل یعنی سلسبیل چرا بهش میگند؟ به دلیل اینکه الله معلومه شده سهلت المصاغ براحتی از گلو پایین به آسانی از حلق میگذرد بسیار خوشگوار هست منش اینه ویتوف عليهم ولدان مخلدون دور میزند اطرافی اونها پسرانی پسر بچه های نوجوان های که مخلدون یعنی همیشه پسر بچه میمانند هیچ وقت اونها بزرگ نمیشنن نوجوان میمانند نوجوان های شک و زیبا که اذا عیت هم وقتی اونها را ببینی حسب تهم لو لو می پنداری که اینها چی هستند؟ مرواردهایی که منصورن کناره هم چیده شدند یعنی اونها اونجا به صف برای خدمت شما اصطادند با همه قضاهای ارز کنم مختلف با میوه های مختلف با جامعه ها و شراب های مختلف انگار که اینها چی هستن مرواردهایی کناره هم چیده شدند گذاشته شدند وی انسان اگر یه جایی قضایی بخورد گایی مثلا یک کافی شما میرید و رستورانانی میرید، اونجا کسی که برای شما غذا میاره یک آدمی هست که ظاهر خوبی نداره. موها جولیده است، لباسش پر چرک دستایش فلان وقتی که غذا میاره، انسان دلش نمیاد این غذا رو بخوره. اما وقتی که اونجا گارسون های بسیار مرتب منظمی هستند تمیزند و بالاخره شیک و زیبا هستند انسان از همون قذاش چون غذا هم همطور خواهد بود. از خوردن اون غذا هم لذت میبره لذا الله عزوجل وجل همه این نکات در بهشت رعایت شدن کسانی اونجا هستند خد خدمتگزارانی هستند که نوجوان زیبارو رو که همیشه نوجوان میمانند پیر نمیشند لو حسبتهم لؤ منثوره اونها را میفنداری که اینا مرواری ده از کنم منتشر شده ای هستند بخش شده ای هستند و اگر رأیت، ثم رأیت نعیم و ملکان کبیرا، هرگا ببینی آنجا می بینی نمط، یعنی هر سمت فقی نمط می بینی، و ملک کبیر، ملک بسیار بزرگ می بینی، عالی هم ثیاب سندسین خود رون لباس بالایی باعث دیها لباس سندس هست، سندس خود یعنی ابریشم نازک، سندس مارک من دیباج. که سبزرنگ و استبرق می گویند که ما غلو باج. اون ابریشمی را می گویند که چی باشد؟ زخیم باشد. وحلو اصاور من فضت و پوشانده می شن از دست بندهای از نغره وسقاهم ربهم شرابا طهورا اللهمی نشاند اونها را شراب طهور. و بعد به اون بهشتیها ها گفته میشه ان کان لکم جزاء او و کان سعیکم مشکورا این جزای شماست این پاداش شماست پاداش اون عمل کردی که در دنیا انجام دادی و سعی و تلاش شما در دنیا زحمت کشیدی عبادت کردی تبلیغ کردی خدمت کردی مشکورا یعنی قادردانی شده هست خدا از زحماتت قادر میکنه انا نحن نزلنا علیک قرآن تنزیلا بعد از اینکه احوال ابرار تمام شد و احوال نیکان تمام شد قبل از احوال نیکان احوال فجار بود که ما خندید کفر بود خداوند عزوجل در رابطه با اهمیت قرآن و اهمیت موعظة قرآن عظيم الشان الله عز وجل بيان بيانني فإننا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا همانا ما نازل کردين برتو أي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن را تدريجا نازل کردني تنزيل كيفية نزولة فاسبر لحكم ربك لحكم ربك يعني على حكم ربك لذا شما هم در تبليغ قرآن در رسندن این قرآن بر اساس دستور رب صبر کن یعنی تحمل کن استقامت کن و لا تطع منهم آثما او کفورا و اون چی مشرکان میگویند، مخالفان میگویند اطاعت نکن اطاعت نکن از آنان آثما انسانهای گناهکار را او کفور ناسپاس را آثم یعنی بدعمل کفور یعنی بدعقیده کسی که هم فساد عقیده دارد و فساد عمل دارد شما اصلا اینها توجه نکن شما کارت را بکن ذکر اسم ربک بکره و اصیلا اما در قبال اینها در مقابل توطئه اینها در مقابل مکر اینها خدا را یاد کن ذکر اسم ربک یاد کن نام پروردگار رب و اصیلا صبح و شام اصیل بعد زور ظهر هست، شام هست، بكرة سری سر صبح است. یعنی على دوام همیشه. و من اللیلی ببین یک داعی می‌خواد موفق بشه. در نهزتش کامیاب بشه و بالاخره نتیجه خوب و مطلوب بگیره هم نتیجه دنیا و هم نتیجه آخرت این ارشادات و راهنمایی هایی هستند که خدای از زوجل را میفرماید. همیشه على دوام ذکر پروردگار و در ساعات شب سجده و عبادت و من اللیل فاسجد له لهو و همچنین از شب سجده کن اورا وسبح ليلا طويلا در شب طولانی تسبیح او بگو ببینی بعضی میگویند که مراد از ذکر و تسبیح در این اوقات نماز است چون نماز ذکر است از اول تا آخر ذکر خدا است یا نیست قرآن هم ذکر است سبحان ربی العظیم هم ذکر است سبحان ربی الاعلى الله اکبر اینا همه ذکرند و نماز همهش تسبیح است سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلى پس خداوند عزوجل اینجا اشاره کرده به اوقات نمازها و ذکر اسم ربک بکره و اصیلا بکره سر صبح یعنی نماز فجر اصیلا بعد از ظهر بعد از ظهر یعنی بعد از اینکه خورشید زوال کرد نماز ظهر و را شامل میشه و من اللیل مغربه اشاره شامل میشه فسبحه و سبحه لیل طویلا نماز تهجج نماز شب در اون شب تورانی هم بیا و خدا را باقی خدا تسبیح و تقدیر خدا بیان کن ها این, این ها اولئی يحبون و پرواه این منکرین داشته نباش این که مخالفت میکنن تو دلیل مخالفتشون اینه که این ها اولئی يحبون العاجل این ها را دوست یعنی دنیا را دوست دارند و یذرون ورائهم یوما سقیلا و میگزارن پشت سرشون روز سنگینی روز سنگین چیه؟ روز مشکل هست روز قیامت هست الله می فرمه نحن خلقناهم و شددنا اسرهم ما اونها را آفریدیم و ما محکم کردیم اسرهم اسرهم یعنی رگهای باریک و اسبهای باریکشون را ببینیم منظور اینه ما محکم کردیم در خلق خدای عزواجل برای هر بند هم ارز کردم چندین رگ و مویرگ گذاشته که این کار هر کسی نیست اینها خود به خود به صورت طبیعی پیدا پیدان شدند انسان وقتی که مطالعه میکنه کسانی که تخصصش را دارند در انسان ظرافت هایی هست در انسان باریکی هایی هست که انسان تعجب میکنه لذا الله میفرما اینها را ما محکم قرار دادیم و اذا شیئا بدلنا امثالهم تبدیلا هرگا ما بخاییم اواز میکنی امثال اینها را تبدیل کردن یعنی انها را می میمیرانیم میکشیم میبریم و امثال اینها را در دنیا میاریم این هذه تذكره الله میفرما این پندی هست این معزی هست فمن شاء اتخذ الى ربه هر کسی میخواهد بسوی پروردگارش راه هدایت را بگیرد عنایت داشته باشید تنها راهی که به خدا شما را میرساند این راه است راه قرآن است این تذکره هر کسی میخواد از مسیر غیر از مسیر قرآن از راه غیر از راه قران به خدا برسه اون غلط اشتباه رفته اشتباه کرده هرگز به خدا نمیرسه فمن شاء اتخذ الى ربي سبيله با چه با این تذکره به وسیله همین پند و موعظه قرانی و ما تشاؤون الا ان يشاء الله اما رفتن شما و رسیدن بر مشیت الهی موکول هست و شما نمیخواهید مگر اینکه خدا بخواد و خدا پس ببین این سوال میشه این سوال را من قبلا مطرح کردم این سوال یه وقتی در ذهن شما که پس خداوند از و هر وقتی بخواد ما هدایت میشیم اگر خدا نخواهد ما هدایت نمیشیم پس ما مجبور محض هستیم اونطور که جبریه میگوید نه ما مجبور محض نیستیم. خدا چه زمانی می خدا قلب شما را نگاه می کند همونطور که خدا قلب بندگان را برای ایمان نگاه می کند. قلوب را نگاه می کند. در این قلب آیا خیر هست انابت هست توجه توجع الله هست طلب هست اگر طلب باشد خدا می خواهد. برای شما مقدر میکنه اگر در قلب تعصب باشد اناد باشد پاره تو یک کفش کرده ب... میگه من بغیر از این مسیر مسیر دیگر رو نمیخوام انتخاب نمی کنم وقت خدا هم نمیخواد و ما تشاؤون الا ان یشا الله ان الله کان علیما حکیما همانا الله علیم هست هر چیز را میداند حکیم هست اگر کسی هدایت میکنه بر اساس حکمت اگر گمراه میشه انسانی هم بر اساس حکمت او هست یدخل من یشاؤ فی رحمتی هر کسی را که بخواهد در رحمتش داخل میگرداند چه کسی را بنویسی منیب را اما کسی که منیب نباشه ظالم باشه مشرک باشه معاند باشه وظالمین اعد لهم عذاباً علیم اما ظالمین خداوند برای انها آماده کرده در عذابی دردناک صدق اللهم